اللهم فرمان جمیع مشاولین رحمان رحمتی و دست امور با اون معدودیت حضوری و کاریم، میشانم گفته شده که در این کلماتی که تا چند روز ماه هم گفتیم خیلی انسجام وقتی ندرشتن هم متفرقات پشت در رنگ از اون منطاله که در قطب متأخر متاخر روزو زیاد آمده مقدمات حکمت و توضیح داده شده که سر رویی که اهل در مایه احرشتان نه سمتر این مثلت متعرض شدن چون اونا بودن که مطلب خودش دراته بر در شیور و سریان میکنه چون خودش دراته شیو در شیور سرگان میکنه یه نیازی مقدمات حکمت نیست الله الله و بی خودش به همه احسان به رو میریم خودش به گرفت یه نیازی به مقدمات حکمت برای اصوات شیور و سرگان نیست از وقتی نیستی این مدلت با شما فکر نبتونم این خیلی دقیق باشه و هر حال دیو در وقت گذشته هست شد که با مجموعی ملاحظه کلماتو بسوییم چه سنین ها و چه قدم های هست و کلماتو متعرفت کریم بسه این صورتی که ما شما شده به یکی از آقاست مقدماتی یه بسکت و محایده انصافم در کلمات اصولی و محروف نیست چیزی وجود نداره ندیدن طبیه که من دیدم مراجعه کردن نیست و احتمالا سرش همین باشه اگر این هست که انصافم در بعض کلمات من حتی که مثال برای آن میخوان بیارن اینه استفاده لیکن این که حالا همه شما باشن من هم نیست همین آنها قادر باشه. و علاوه با کلا قادر احتمالا همین که ماهی با قرآنشون همش هم همشون شده در ماهی منحی سوریه خود همین مردار رو کابلی میزونم که دیگه نیازی کشمت ها شد یعنی وقتی فرمداز الله رو به ماهیت بری که ما موقع در مقابل و این خصوصیاتو رو همین که فرمد احلالله ظاهرش به ظاهر شده این که خداورد امتعال به رو ماهیت به رو ماهیت به رو, رو این رو خداوند مثال امزا کرده چون احتمالا شده به احل هست کرده ابق شارت بعا تفریح بعید نیس در س عقود و معاملات این الفاظ که بهسیره امر و سیره خفا و اینها میاد مفاد جدی اونها موارثی باشه که مربوط به معاملات نه موارد تکلیف و طلب و بحث و زجر و اینجور چیزا مثلا عوف بلعقود نظر به وجود وفا نیست چون از خلی سیغه افرد و این حیعت وضع شده برای خرد اینجا طلب نیست مراد این است که یعنی ظاهر ظاهر سیغه تلبه بعد این مراد جزیشون به عبود خوده مراد جزی عبارت از رسوم عبده اگر مراد از عبد عبده باشه از که بی اقتمال هست که مراد از افر به عقود یعنی احکام الهی معرض الله مهلیکا اگه اون باشه تکلیفه او اما اگر مراد افروب الوقود همین افروب و معاملات یا قراردات به ضرورت فرسی راست کنه با قوله امروز این قراردات ها ناصر به قراردات داروشه افروب الوقود مفادش مفاد تکلیف نیست مفاد افروب همون لزوم یعنی قراردادی که بسته شد اون رو کامل کنید یعنی به عبارت اخراق قابل نحض نیست شما گفتید که این خونه در روزا بعد این برگرده هم نداره خود لفظ وفا در لغت عرب اصلش معنی کمال کامل، وافی ایلیفان از در هنوی وافی، همی که همون که در رسیدن به کاملا دو رشید از نور پس اول فهمیدم که این بحثیه که تو که آبی می‌دهیم، آن ادمو تأمیرش و آن اینها در واقع عبارت اقدام این است که نمی‌سرد گلی بر می‌گردد لواح و خصوصی که در آن آنسول آیات چون من آن کردم. صولت به زیادی از کمامه بشری ولی که موظف بشری روز قانونی و تا آمیر قانونی در اونها حاکم نبود و که قانون نبودش تا آمیر قانونی هم نیست این هم به طبیلی جامعه عرب و از اسلام قانون نبود ولی ازا روز قانون قانونی هم در اونها وجود یک مجتمعات محدودی بودن که در اونها قانون حاکم بود و نوشتای حاکم ب یک نوشته بود که این نوشته شما را ش کردن همیشه در این جامع آقایق ماده ممکن نه ها باان باش رقمانده خاارشی می شمای که بهداد دی تا که امروز وطرفه استجار در این ها روز قانون پسا قانون حاکم نیست قانون همون چیزی سفا حاکم میگه آنها نامنوشته قانون های, های نامان در ولی از بود دیگر و ولیزا در زبان حرب این گود که اگر نرشه میشون یا بکنه آنونی داشتید این کتابه هاوسیان کتابه ها این سر کتابت و این تطور بود اما وقتی که نوشته نم بود عبارت از مطالب بود که حاکم بگو قانون همون شخصیت حاکم بود و کتاب نداشت اموزو ببینید بود نوشو بیجید تشکیب ببینید بود جا به تحبیر اموزیانی اندیکساتوری یا استردار یا به قلب مظمومی آنه ایمت از در کتاب تنبیه کنیم زبطن در حکس که حال رو در حفرش کمیسته که امروز سلطان به منزله خداوند متعال شده لا درجه ای برسته این درجه ای برسته که این درجه نه برسته که این نه اوزای خوبی میشه به اصطلاح زمان میخانونی حالا میخواد این زمان باشه سر سال قرار باشه سر سال قرار باشه، سال سا این باشه، زمان خیلی در این جهت نداره لذا چون نبود تأدیرات قابل نبود میامدن همون تأدیرات که در مقامات مثل بحث و بود که به زور مظاهرات در وجود داشت از اونها استفاده میکرد این اوفو بودم مناش همین احلالله هم احتمالا در ایجاد معنای قانونی کلیت نیست. اهل الله الله را بنده، محله اهل الله را بنده، نمی‌تونی که میاد مثل این نتوانید از کمک‌کنی مثل این مثل چون معروف به قانونی میشه احلالله مردی تحدیره به حساب قانونی بیمانه نیست احلالله های جبله رو فی محله اقربه رو فی مقرده یعنی این بید رو امزاج هست امزاج احلاله های امزاج احلالله های شاید پس اگر اونطور باشه این طبیعت این ماهیت اگر ماهیت ماهیت این ماهیت از مدرد شرق مقدس اسلام امزا شده همون برداشت و حرفی که از بوده این ماهیت به مادر مدر مفهومه حرفی به مادرها منالوانه حرفی منالوانه اعتباری این در مهند خودش اقرار شده در مهند خودش تصدیف شده امزا شده هر و مدر این در همون جای خودش رو قرار داده جابجا نکرده این مهنده احر پس بنابراین اینا ها ادعا اینه که خودمهای اصحاب یا اطوری نهده شدنم که نه نهی بردن هم من خیلی واضح نمیزم در کلماتشون اقتبال قبیل میدونم که اونا های ما میادی که موقع نمو نداری که در خلال خود موقع نمو تهلیشمت من اشانتا توضیحاتش اصحاب همون در اصول متأخر ما یعنی من یک سال پروژه سال عادی با چند تا پیش مباهی و چند تا تقریر رو اصول و سقاوانه ما را و نیستم خونده بنابراین یه نظر تقریمی خوندیون متوازی شده در بحث در حال نشد حساب اما این اومده در اصول متأخر ما این, این مطلب بله آمده ما. این و مشهور همونطور که تو ذهن من قائل هستن که مغزماتی نجمت چه تاست کامور موزه قدمتی بیان که عمره مغزماتی و دوم این که قرینه این محتصل یا محتصل نباشه سوم این که قدمتی تو مقام خاطب نباشه نه قدمتی تو مقام واضح قدمتی افن مقامل واضح رو موزه نمیدونن مثلا گاه آقا به در بره نقیه بسیار خب این در مقام واقع. اما این توی لحظ در مقام مفیقتن کسیر نمی کنه ولی در این یک قدر مفیقتن در مقام کردن تو هر چیز در مقام باقیه خودش دیگه یه عطا هم انشاءالله عطا می یه عطا تین این عطا یه دست هم که خیلی قدر متیرقن داخل اطلاع نیست اونایی که اشکال داند تو همونی مرادشونه اشتباه نشان یعنی هستا اگر قدر متیرقن باشه نمیگن لحظه را هم رو کنید بر قدر متیرقن این یه چیزه نموحبی خط دقیقه یه که نه لفظ هم به قدر نمیشه اما اطلاعی که خیلی قدر دیگه نداره وجود لجبان مسیح از نه این اعذای اصلاح موجب این سراغ کردم مسیح کرد. اینکه فقط مراد از تو غیرش مراد نیست. نه وجود لجبان مسیح تو مرا مانع از این اطلاق اما نه اینکه فقط کردم مسیح مراد اگر گفت عکمل علماء کردم مسیح کرد لامع هم تخاصد و واقعا آدم محابض زالد و رایل طبیل محارض دنیا را این که اون مقام بازد. این یک قدماتی افرده تو مقام تخاصب داریم. مثلا این خواب حکمان تو حوزه گفته بشه که محاول کردن علمای مثلا و حالا یکیسی آدم مثلا به فیزیک و شیمی. این خیلی در مقام تخاصب اراده بکنه آدم به فیزیک و رو دلوقتي. این رو که قدر مستیقتن در مقام تخاطر این قدر مستیقتن در مقام تخاطر میشه که اختصاص این فقیق و حصولی پیدا بکنه اما میگن مانع از انقاد اطلاق میشه اطلاق که شامل بشه آلم فیزیک و شیمی با وجود روی مستیقتن در مقام تخاطر اطلاق نه اینکه که بشه به قدر موردشون از خضر مستقردی این سه مغزمه ای که مشهور گفتن و, و این سه مغزمه هم در همین کتاب های جزی ما مثل کتاب کفایی وارد شده خلاه ماموالی شده که کتاب دیگه نر باشه نمیدارن بلا چون دیگه این موجب میشه مثل انصراف نیست اگر به انصراف دارسته که لفظه به منسرف بشه این خضر و این خضر مستقرد من انصراف نیست من دارم این که بینه قائد بینه واقعه اون قائد قائد چخص قائد تکرونه یابی چرا اگه اون جاقت این ما سه یافتن باشه باز همینطور ما نرده تکرونه یابی نه من من مرسی نرده یابی اون تنگاه به کسی بیرسی به نیسته تکرونه یابی چرا من داری کسی نه ببینید اینا میگن که اگر لحظه انصراف بزار کنه این که بگن روب در خرد انصراف بزار کنه و روب به این بحثی که لحظ مرادیه اما اگر بردان از فنبوز اینکه مرادیه انعقام رو افلاق رو ما میشه. دو تا بحثه اگر انصراف آمد میگه مراد از بو روب رو روب به گوشه روب رو شامل نمیشه روب به توت ناظر شامل نمیشه اما اگر در بود نبود قانوناً اگر شما موقعه تفاوت نوابه اینا آمده برای تحریر ظهورات و استظهارات این من مل... اشتباه مل... مل... کردم برای استظهار و تحریر اول استظهار بعدم تحریر میکنن اینا اولا میگن اگر که قدمت در مقام واقع بود این اصلا مضر است اگر متقاعد که مقام تفاوت بود این مضر وقتی به انعقاد افلاق اما اگر انصراف بود موجبه هم دلر بر اون معنا میشه نه بقید مانع از اطلاقه روشنش تو چند جلوه بیشه پس خضر موسیقن تو مقام رواطه مثلا خضر موسیقن ارز آدم آله میگره اما این موجبه نقاط اصلاف مشکل با اصلاف میگره که اون را موسیقن بودی محقیز حالا خضر موسیقن ارز آله بوده آمل باشه ظاهب هم باشه برای هم باشه این قدر موسیقه هست اما این موجب می میشه اکمال عالم بالا این وجود قدر موسیقه هستن تو مقام واضح هیچ زرر نمیست. اما قدر موسیقه تو مقام سخاصو. مثلا تو حوضه کسی روی اکمال به ذهب میدوند که مراد عالمون فقیق باشه. این قدر موسیقه هستن مانع میشه که لبزه الالم اطلاق داشته باشه شامل فیزیکیان و شیمیدان هم بشه. اما موجه به این که ارادی خصوص فقیه هم نمیشه اما اگر این سراغ آمد این سراغ نفرد مانع اطلاع موجه به این که اون خصوصیت مراده مثلا گفت رو بکر این خصوصی رو به گوزه مراده یک اطلاع نداره انوال رو بکران درست؟ پس یکی این سراغ داری یک قبلانتی اتران سو مقام نخاطب داریم. یک قبلانتی اتران سو مقام واضح داری این ترجاع سراغ داری برای هم درجه یک اثر رو دفتظهار. این بخش دستظهار بخش تو بگویم تحریر این محلقای ما این که این, این خب سه تا مقدمه همه در طلاقه مشهور مشکول از بازی نوشه همه تحریف اپنی خواهی خواهی چون این سه مقدمه در طلاقه های در سید نصده کفایی همه خدا ترواه همه خوندن دی خمزه ها و البته خیلی از مشغول بین طلب و من بزرگان در محاضی قبول فرمیدن من محاضی ها مقدمه رو خلاسه مقدمه اول رو شرده خوبی دادن مقدمه یه هم که قرار باشه توضیح دادنی که ایش داره رو چون بوده که کمینه نباشه توضیح نبودن در که که زیرا که توجیهی و در سبب شهرت در حوزه شده مرجوم محقق عراقی هم قائل به همین نظر سه تا مقدمه بر قرار دادند کول متکلم مقام بیان عدم وجود عین و منفصله و عدم وجود عدم غیر در میگاه تفاوت اگر تو خود را بیان تکلیف در مقام باقر باقر بعد این مسئله هم خدا آزادی را تصویب میکنه آزادی متعارضش ما موجب این سراغی آزادی متعارض کرده یعنی نه مانع این اراده میشه این دو رو فرق بسه. نه یکی این کادر متعارض مرازه کادر مرادی نیست به خصوص دوباره این اراده هم نمیشه اصلاح هم ثابت نمیشه این خلاصه بحثی که در ما بالبن مشهوره از کلی مظموم های بروجه اون مخلی که ما نکردن در اینه و قینا که هم رو بازی می سواز قرآن نباشه یا تو بحث پس ایشان مقدمات رو یک چه قرار دادن مرموهای بروجه اما ما پر تقریب مقدمات یکی ساون کن متقریبی مقام بیان دیگه چیز خاصی ما نبین استاد قدرت الله نفسه و به قامند استادی مرموم سه تا مقدمه تراردن به این صورت یک اطلاح جایی کنه اما از که تقییر ممکن باشه نایم هم همین کاری این مقدمه اول تراردن اونان بخاطره که تقابل به اطلاع را کرده این تقابل و عمده. الان تو استاد ادرمانه که قبول ندرم درمیدن که مقام سبوت مقام اسفال فرم قبول کرد از دارم که دو متکلم در مقام بیان باشه سه قرینه هم نباشه. پس تقریب به مقدمات حکمت توی مقامی مرگوم نامیدی این تقدیر است که من حدس کردن که مرگوم استاد هم از ایشان گرفته و میموند منطقه قدرمتی تن و مرمونهای خبو نبردن خلاصه به نظر من با بخشی که از به نظر واضح شد چون مرموش رایی فرش قدرمتی اقتر اگر به یه انطراف برده قبول داریم این بودا فلا تأثیر برده قدرمتی اقتر از اون مقام تخاطب رسته قدرمتی واقعی ایس مقام با مقام واقع فهم نکنه چه طور شما یکم قدر در مقام واقع تصکیب می کنه؟ تو مقام فحاسه هم نمی کنه، اون یک تصکیب می کنه اگر موجب به شد، اهلاً اگر موجب به انطراق شد می کنه دونه قدر موجه هم در در یعنی و در مستهلن از آزه دیگه در روزه های ماهیم شد اما شامل فیزیک ها هر به حد امسلاف ابو ام. به حد انصاف روشد شد مبانی اینها رو منشون دادی آشه ها یک شدیدن با مدربر یک توی هم هم عبور نبردن اما فکر از در مخلی به کلماتشون و ها بزنه نه است که گمه شهر داره مقدمی دو که خیلی نرسته شهر ندسته که کنم ها که که پس اگر تحبیل یک معنی که مرموم و حتی مرموم اصلاف شدیه های یک معنی که اطلاق ممکن با تحبیل خوبی چون نسبت و اطلاق نسبی میدونن به شابه های تحب رضا ممکن است یک کلام از یک لحاظ اطلاق باشه از یک لحاظ نباشه بی واضح خود نایمیت بکنه مقدمه ها به حقیق دو تا این که بوده در مقام برد و خب خب شو خریم نباشه خب قریمت بوزن اگر درمشو واضحه هر که برقب بزن مهمنه برقب بزن, بزن مهمنه این که واضحه که برقب پس در بزن پس زندن در میشه مردونای مروستادای قوی شریات برجج در تن توی یکی میاد اون کلمه اولی میموال بیانات است که در کتاب طلاط مردونای خیالات مروستاد سه تا اما اگر دقت بشه شبیه کلمات مروقال برجج هست یکی است اون کلمه متغیر میموال بیانان و چون مخصوصه تو دادن در مقابل باید از این حیثیت باشه محضور که تقاؤل مدتاره تقاؤل عدم ملکه درستن که این شاید توضیح شمه این راجع به بخص محظمات حکم پس با این بجاند منزل ترکیرن به ما سبب یه بخصیز که نتیجه ترکیرات احنا با علمای سنی و شیعه و اصولی در طول این چهار درد گفته شده البته وقتی این برس ها همش در فقه انعکاس داره بحث مقدمات محرد حکمت جزب مواقعی سیستی در اشتظهار است آیا فوق العاده عاده تأثیر داره حالا خیلی بحث و ما خیلی تأثیر نداره اما این خیلی تأثیر داره و تأثیرش هم سر یک کلمه هست همون اول در مقام بیان بودن و خب ازده از آلمای از عبدالسان هستان در وضع لازم یه تبدیل فخصه و وجود از ما میگیرم کنی صورت شوز میسه صورت شوز بعد چون فخصه و وجود از به این محله جواب محروف از مقابل مثل ما ها این میشه این در مقام اطلاق از این یعنی این بحثات دیگه بکنید یعنی این بحث مقدار زیادی اهل سنت به آیات کتابی تمثل کردن بیش از اون مرداری که میشه به ظاهر زاهر لنگی کرد زاهر مورد مورد ظهور بارمی حتی مثلا حالا یک اشخالات سریفیات دیگه یه دفع اشارات سر اطلاح اون دیگه دیگر اصلا مثلا اصلا منکان مومنن که منکان فاسرنگ های است خب ظاهر آیه و بلکیر هست که کافر رو سلمان مساویر نیست ابن هز این آیه تمثل کرده بگیر کافر بیه نفردیه باید باید رو سلمان خب این خیلی اول عجیب ده که این آیه کجا صحبت دیه داره کجاش ناظره به دیگه از اصلا بخش دیگه از یعنی این درست یعنی این خود میشه خیاری سر کرده به و فقط این مقدار مید از منتران نجامیده که از به همین آیات ترسل که که سالیات یعنی این جو آمده مفاد کتاب رو این طوری تفسیر کرده اون دیات و موساده اگر اگر من اگر من کلمه مامانش کلمه اما فیض آیا آیا فصل من نه اون کلمه این که اصلا, اصلاً, ما را که لالا مندل اصلاً این موشیندن ما کنم رو که للا به دقا تنصیر کردن یه این همه امورده این جشنه دارستن هیچ جشن نا نا هی جاش. پس هم آوردی این بحث دامنگاری شده و در دنیای اسلام مخصوصا الان هم متاسفانه یاد اسم مو زندومی های ندر کنم که شما من یه تفکری داره یه که ما اصولا کل احکام رو از قرآن در بیاریم و نتیجه کل احکام را از قرآن در بیاریم هم نیشون میشه همین بر یه سال موقتراً پشه یه سال بروری به یعنی ما اما رو که و اندره رو از این آنهایی هموندن پرنستوی که شکرد از همه یکی زن و مرد که ایچی آزد برقایی که ظاهر کرد بر او مغادر میشه که نمیزه تن این هست این یه تفکر البته یعنی زمان ماشیه آمد که یارو در مرد وفات رسول الله سلسول الله سلام و علیفه گفت این رسول رسول این مبنای حسپناه کتاب الله درست در میاننده سنت هست و که اون حسپناه کتاب که الان بگیم ما که ما به هیچ روایت مراجعه نکنیم و کلا کتاب احکام داریم این حسپناه کتاب الله نیست از این کلام این شخص نیست نه انگشته این چیز دیگر ای مرادشون حالا به افراد این تفکر پس این مسئله که آیا ما مقدمات حکمت میخواییم یا یعنی نمیخوایی همین الان در کتب فقه حقه سنت اختلاف زیاد و شیر محسوسن و الان الهان نمیانه از قدیم این مسئله شدیدی داشته به خاطر این این و من توضیح ها بعد ساهن کرد که هر مقدنه رو که نقطه هایی گفته شد این اجمال بحث پس اجمال بحث یک ما در حمل مخلق و مغیل که هم اصل نیاز به هیچ مقدمه ای نداریم همینی که با احل الله رو الله رو بیان محکومش واضح خصوصا اگر نسبت یعنی میگن مشکول از رسولت را قبول نکرده بگیم دلالت بر و سریا پیچیدگی نظر نظریه چی؟ تمام اندوالتی حلال است که اینها به نصف آیه مبارکه حالا میخوای توی سیره مادریه باشه یا توی سیره مسترولیه باشه یا یا عربی باشه یا فارسی باشه یا سری باشه یا بزرگ باشه یا باشه زن باشه مرد باشه کور باشه هم باشه بیلاکری همه احکام همه همه حلال درمیاد. میاد که هیچ مقدماتی هکتا از هم نکده این یک دو نیاز مقدماتی هشمت در حقیقت اینها فقط نیاز دیرکشنان به اساس عظمان غریب نکیه یا میگه امر کلی در کل دلالات لفظیه ظهورات لفظی قیمانش و اساس عظمان غریب هستی اساس العیقه و غیره ها قیمانش اساس عظمان غریب دوم دو این که ما فقط کن المتقدر بی مقام بیان کنیم بی یه چیزیگی ری می کنیم این دوم دو سوم این که کن المتقدر بی مقام بیان برمیانسه رو بریدن هست که نایین رضا سالان هسته گفته چهاروم این که اصلاح در بی کرد توشید تقیق تقیق ممکن است یک اون ممکن است ثانیتی مقام بیان قریبه نباشه که ظاهر کلمات استاد در محاضرات به نظر من مرزیش به کلام نیست. و کلام هرزا هم به کلام مرموم آی برگیرگی قدس الله و سره. تا اینجا که شامل محلت براتون شد حالا وارد یکی استظهار و دوم تحریر اما مقدمه مشهوره که کل رو متکلم در مقام بیان چیزی درست شده اصلش لفظی محسوسا کسانی که آمدن جسل بحث اطلاق بحث راجع به لرم اینه راجع به معناست عموم رو لفظی گرفتن اطلاق رو به معنا گرفتن از این اطلاق و از اوتاق به معنا شدیه تحبیر شما لفظی عقلی عقلی این یه بستی داریم ما من این کردم گفتم در کلمات اصولی انسان احساسش اینه که هرچی مستقیم از لفظ استفاده نشه یعنی عقلی مثل وجود مقدر این حجوم مقدر نه از عقل مقدر از عقل عملی نیست که شون عقل, عقل یعنی شکل مستقیم مثلا گفت نان بخر نان بخر تویش نیست بازار برو تویش کلمه بازار برو نی؟ چون لفظ بازار برو نی؟ ما میپنیم چون من خیلیزم بزنیم رفتن نمیشه این اسمش عقلی گذاشته این از تفسارات منبیشم خود اختیوه که گاییوها مرادشون که مستقیم از از مستقی مراد از عقلی رو این بگیم ولی بیم من است این هم راجع به این مطلب اما مقدر اولا باز بگیم این بیان. یعنی چی؟ و چه نکته این موجود شده که این رو ما اتباه رو کنیم دست که داده این دوسته بوده دوزه شد که شما ما این سرکریم ندارم از سال بحثم توضیح دید روشن شد که آقای آن موسولین در اصول شیده که چون اطلاق یک عمر نسبی است یعنی اطلاق در جایی تصوره رو میشه که تقریب ممکن باشه پس به طریق اطلاع اقلاب در جایی ما میتوانیم از لحظه استظهار بکنیم که تقیید قابل استظهار باشه یعنی متکلل بیان تقیید داشته باشه یعنی متکلل در حالی باشه که هم میتونه تقیید بکنه هم میتونه نه حالا که میتونه تقیید بکنه و نکرد پس مرادش شکلا به قطعه پس مراده از تقییر این در مقام بیان بودن مراد از این که متکلم در مقام بیان باشه یعنی متکلم در وقتی باشه در حالتی باشه که به طواهر تقییر بکنه و با توان فر تقییر و با در نظر گرفتن این که میتوان تقییر کنه محضاله نکنه این از اینجا متکلم در مقام اما اگر فرض کردیم متکلم در مقامی که امکان نداره طبیب بودن اون بحثیم نایدی بحث امکان رو اول مطرف بیرده کن یعنی در محبتنه اول مطرح کرده امکان طبیب در جاهایی که این خسامات بعد از و از خطا میگه تمنیل ممکن است. که تولیه شده مرحله دوم میگه نه ای در این که ممکن باشه تقییب ممکن باشه باید متکلن در جوری باشه که میتواده اگر به اصلاح،, به اصلاح داره تمام مرادش رو بیان میکنه و اگر مرادش تغییر بود خواهی نخواهی بیان میکرد حالا که تغییر رو بیان نکرده پس اطلاق داره اما اگر متقلل در مقام بیان تمام مرادش نیمید دقیق کنیم دیگه در مجال تو چه از داخت مستق کنیم از وقت مرموم نامینی قبضی صلی اللہ و در اینجا توضیحی ندادن کامه اشاره کردن به این مبنا اما توضیحی ندادن در این علامات تقریب اما احتمالاً مراد ایشان این باشه، احتمالاً. بعد سابقا نهان کردم خدمتون در باقی حجی یعنی وش حجیت زهورات دو ممنای احساسی هست یک ممنای احساسی این که زهورات از واقعی که کاشف از مراد واقعی متکلمه ها جد ولذا حجیت ظهورات و داخل تن تو حجیت زن این بحث این موزه هم دست که یکی در موازد هرمونتیک در برد. یعنی معیار در حجیت زهور به مقدار کشف از مراد متکمله طریق برای بیان وصول به مراد متکمله ولذا هم جزء ضروری است البته منظور شیخ که در رساله این بحث آورده جزء ضروری معتبره ما ذنکل قول از ظاهر کلام مراد او اینه این یک یه برسه ای که ما تو زهورات کار به مراد نداریم کار به طریق نداریم این مارد نقصد رو متکله و معنی گفتی در کلام به فعال به نماشای لده سال از فعاده دنیدار ما کار به فعال نداریم خود لفظی نفسه طبق غرارات اجتماعی زهوراتی داره طبق میسا با فرداریم نقطه حجیت زهور همینه ما دنبال مراد واقعی نیست مربوز نایمی آهد به مسرک اوله یعنی ما دنبال مراد واقعی هست پرچند رو از کلم اینجا توضیح ند دیگم توضیح رو اگر دیگم در حاشی طبیلاتی شد در قبل وقتی اشاره کرده مثل توضیحی داده اما در اینجا توضیح کافی ندار پس بنابراین ما نقطه این است که ما از اطلاع خود دقیقه این تحلیل. تحلیل پس یک استضحاد دو تحلیل استضحاد باید تحلیل به اصطلاح ممکن باشه که باید یعنی باید متقلید در مقام بیان این خصوصیات باشه حالا که در مقام بود و نکرد مرادش اطلاحه اون قیل بخواست باشه بخواست این استضحاد تحلیل چون ما دنبال کشم مراد واقعیم که واقعیم هستیم مراد واقعی اگر مراد واقعیش قیب بود گوبه اکنه به مراد واقعیش آده بود خوب می گفت. مگر اینکه بگیم مراد اصولا توی این مقام نبوده طبعا محسن ازش آده پس دو بخش یک متکلم در مقام بیان تمام مراد واقعی شه می؟ دو متکلم در مقام بیان تمام مراد واقعی می روشنجو اگر متکلم در مقام تحلیل بشه بیان تمام مراد واقعی باشه اون بخش اطلاع محقق میشه می؟ یعنی رحمی که از گفت آدم و در مقام بیان تمام مراد باقیش هست می که آدم با جمعیه و قیود مرادش روید اما اگر تو مقام بیان نبود مقام بیان چی؟ یعنی متکلم در مقام بیان تمام مراد واقعیش نیست متکلم در مقام بیان تمام مراد واقعیش نیست او با هم در مهان باید تا مورد واقعیش نیست نمیتونی به توانید باستان اصلاف کنید چون نیستونید تکل مراد واقعی بکنید پس تحلیل این مثله این شد روشن شد یک استظهار دو تحلیلی استظهار روشن شد و در مهان بیان باشه نباشه اطلاح مرده میشه تحلیل چون ما آجل هستیم لب در جایی خود جده زخود. چه متکلم در مقام بیان تمام و تمام با این که نه مراد، همان مراد اگر متکلم تو مقام بیان بود یعنی در مقام بیان تمام مراد باقی میشه حالا که در مقام بیان تمام مراد و باقی آدم پس تشریح همین تمام مراد عالم آدم قابل بودن معنا تغییر ندارد آپ نے ما مراد واقعی میں مراد وہ نہیں ہو تو یعنی اونجا اونجا اونجا میشه دیگه ایشون از که اینجا شرح نده اونجا شرح داده پس مبنای ایشان در حجیت ظهور لفظی حجت چه کاشب مراد تمام مراد واقعی و مطلب شون مادیت منیت و وقتی زهور در اطلاف که تمام مراد واقعی باشه و این وقتی میشه که او در مقام بیان باشه ما می اما اگر در مقام بیان نباشه ما می که شاید نمیخواد که با اکون العالم تمام مراد واقعی که بکنه پس احتساب اون با. نمیشه رسول الله علیه و مبنای دو فرد عرض میکنه البته البته از نمیشه وارد راست و آمیش تیار